فصل ششم تخیل کارگاه ذهن گام پنجم در جهت کسب ثروت تخیل تخیل در واقع کارگاهی است که همه هایی که توسط انسان تنظیم می‌شوند در آنجا شکل میگیرد. کشش یا تمایل در آنجا به واسطه کمک قوه تخیلی ذهن شکل میگیرد و به عمل در میآید. میگویند انسان هر را بتواند تخیل کند می تواند بیافریند از میان همه اصار تمدن، اصر ما مطلوب ترین اصر برای رشد تخیل است چون اصر تغییر سریع است انسان با هر دست می تواند با محرکی تماس بگیرد که تخیل را رشد دهد انسان به کمک این قوه تخیل بیشتر نیروهای طبیعت را در طول پنجاه سال گذشته کشف و مهار کرده است طوری که تعداد این نیروها از تعداد نیروهایی که از ابتدای تاریخ بشری تا قبل از این پنجاه سال کشف و مهار کرده بیشتر است او چنان بر آسمان چیره شده که پرندگان اصلا به پای او نمی او هوا و فضا را مهار کرده و آن را وادار کرده است که به عنوان ای برای ارتباط فوری با هر نقطه از دنیا که بخواهد عمل کند. او خورشید را از فاصله دور چندین میلیون کیلومتری تحلیل و بررسی کرده است و به کمک تخیل عناصر تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار داده است. او کشف کرده است که مغز خودش هم ایستگاه پخش و هم ایستگاه دریافت موج فکر است، و حالا می‌خواهد یاد بگیرد که چطور از این کشف استفاده عملی کند. او سرعت حرکت را افزایش داده است، طوری که امروزه میتواند مسافت 480 کیلومتر را در مدت یک ساعت طی کند. به زودی زمانی خواهد رسید که انسان می‌تواند صبحانه را در نیویورک و ناهار را در سانفرانسیسکو بخورد. تنها محدودیت بشر در چارچوب عقل عبارت است از توسعه و کاربرد تخیلش. او هنوز در استفاده از قوه تخیل خود به نقطه اوج نرسیده است او صرفا کشف کرده است که تخیل دارد و شروع کرده به استفاده از آن آن هم به شکل بسیار ابتدایی دو شکل تخیل قوه تخیل به دو شکل عمل کند یکی تخیل ترکیبی و دیگری تخیل خلاق نام دارد تخیل ترکیبی فرد به واسطه این قوه با مفاهیم ایده ها و برنامه های قدیمی یا قبلی ترکیبات جدید درست می کند. این قوه هیچ چیزی خلق نمی کند بلکه صرفاً با تجربه، تحصیلات و مشاهده که دریافت می کند، کار می کند. این این است که مختران بیشتر از آن استفاده می کند. البته اگر فرد نتواند مسئله خود را از طریق تخیل ترکیبی حل کند، از تخیل خلاق استفاده خواهد کرد. تخیل خلاق ذهن محدود بشر از طریق تخیل خلاق با هوش بیکران ارتباط مستقیم دارد. این تخیل است که از طریق آن شم و الهام دریافت می شود. به واسطه این قوه است که همه ایده‌های ایده های بنیادی یا جدید به بشر رسیده و می‌رسد. به واسطه این قوه است که ارتعاشات فکری از ذهن دیگران دریافت می شود. به واسطه این قوه است که یک فرد می‌تواند خود را تنظیم کند یا با ذهن نیمه خداگاه دیگران ارتباط برقرار کند تخیل خلاق به صورت خودکار به گونه‌ای که در صفحات بعد توصیف می شود کار می کند. این قوه فقط زمانی کار می کند که ذهن خداگاه با صورت فوق‌العاده زیادی ارتعاش پیدا می کند مثلا مثل زمانی که ذهن خداگاه به واسطه هیجان یک میل قوی تحریک می شود. قوه خلاق نسبت به روشی که به واسطه یه کاربورد پیدا میکند حساسیتش به تأثیرات منابع فوق ذکر بیشتر میشود شما قبل از اینکه مطالب بیشتری بخوانید، روی این نکته تحمل کنید همچنان که از این اصول پیروی میکنید به یاد داشته باشید که داستان کامل اینکه فرد چطور میتواند میل را به پول تبدیل کند را نمیتوان در یک جمله بیان کرد این داستان فقط زمانی کامل می شود که فرد بر همه اصول مسلط شده باشد و آنها را جذب کرده و از آنها استفاده نماید. رهبران بزرگ در حوزه های کسب و کار، صنعت، پول و موسیقی دانان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان بزرگ به این خاطر بزرگ شدند که قوه تخیل خلاق خود را پرورش دادند. میل فقط یک فکر است، یک کشش است. مبهم و زود گذر. انتظایی و بیارزش مگر اینکه به همتای فیزیکیش تبدیل شود با اینکه تخیل ترکیبی تخیلی است که در روند تبدیل کشش میل به پول بیشترین کاربرد را دارد ولی باید به یاد داشته باشید که ممکن است با شرایط و هایی مواجه شوید که استفاده از تخیل خلاق را نیز می تلبند. قوه تخیلتان ممکن است به واسطه سکون و عدم فعالیت ضعیف شده باشد. اگر از این قوه استفاده کنید، می توانید آن را احیا و هوشیار کنید. این قوه شاید با استفاده نکردن نهفته و خاموش شده باشد، اما نمی میرد. توجهتان را در حال حاضر بر روی پرورش تخیل ترکیبی متمرکز کنید چون این قوهی است که در روند تبدیل میل به پول غالبا از آن استفاده خواهید کرد تبدیل کشش غیر یا کشش میل به واقعیت ملموس یا پول مستلزم استفاده از برنامه یا برنامه هاست این برنامه‌ها باید به کمک تخیل و عمدتا با قوه ترکیبی شکل بگیرند کل کتاب را بخوانید سپس سراغ این فصل بیایید و یک بار دیگر تخیلتان را به کار بگیرید و روی تنظیم برنامه یا برنامه ها کار کنید تا میلتان را به پول تبدیل کنید اگر تا به حال العملهایی را که بهترین تناسب را برای نیازهایتان دارند عملی نکرده اید و برنامه تان را به روی کاغذ نیاورده اید این کارها را انجام دهید لحظه که این کار را کامل می کنید قطعا شکل عینی و ملموسی به میل غیر ملموس و غیر اینی خواهید داد جمله قبلی را یک بار دیگر خیلی آهسته و با صدای بلند بخوانید. و وقتی این کار را می به یاد داشته باشید میلی را که در آن لحظه به زبان آورده اید و برنامه محقق کردن آن را بر روی کاغذ نوشتید واقعا اولین گامی را برداشته اید که شما را قادر خواهد ساخت تا فکرتان را به معادل فیزیکیش تبدیل کنید زمینی که روی آن زندگی می کنید، خودتان و هر شیء مادی دیگری نتیجه تغییرات تکاملی است که ذرات میکروسکوپی از طریق آن به صورت منظم سازماندهی و آرایش می شوند. به زبان آوردن این میل نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. میل کشش فکری است. کشش های فکری شکل های انرژی هستند. وقتی با کشش فکری یا میل شروع می کنید به پول درآوردن، همان چیزی را به خدمت می گیری که طبیعت از آن در آفرینش زمین و هر شیعی از جمله جسم و مغزی که کشش های فکری در آن عمل می کنند استفاده کرده است تا جایی که علم توانسته است مشخص کند که کل جهان از دونصور ماده و انرژی تشکیل شده است هر چیزی که انسان می تواند آن را درک کند از بزرگترین ای که در آسمان است گرفته تا خود بشر از طریق ترکیب انرژی و ماده تشکیل شده است. در حال حاضر، شما تلاش می از روش طبیعت بهره ببرید. شما سعی می با تلاش برای تبدیل میل به معادل فیزیکی یا پولیش خودتان را با قوانین طبیعت منطبق سازید. امیدواریم این تلاش صادقانه باشد. شما می این کار را انجام دهید. این کار قبلا انجام شده است. با کمک قوانینی که تغییر ناپذیرند میتوانید ثروت زیادی به دست آورید اما ابتدا باید با این قوانین آشنا شوید و یاد بگیرید از آنها استفاده کنید نویسنده امیدوار است با تکرار و با توصیف این اصول از هر زاویه قابل تصور رازی را برای شما فاش کند که هر ثروت هنگفتی از طریق آن حاصل شده است این راز که شاید عجیب و غریب و متناقض به نظر برسد یک راز نیست خود طبیعت این راز را در زمینی که روی آن زندگی می کنیم، اعلام می کند. در ستارگان، در سیاره هایی که در دید ما هستند، در اناسر بالای ما و در اطراف ما، در هر تیغه برگ علف و در هر شکلی از زندگی که می بینیم. طبیعت این راز را از منظر زیستشناسی در تبدیل یک سلول بسیار کوچک، سلولی آنقدر کوچک که ممکن است در نوک یک سوزن گم شود. به یک انسانی که حالا دارد این خط را میخواند اعلام می کند، تبدیل میل به ماد فیزیکیش هرچه باشد دیگر معجزه نیست. اگر همه آنچه گفته شده است را کاملا درک نمی کنید دل سرد نشوید. اگر مدت طولانی نیست که شاگرد ذهن شده اید انتظار نمی روید که همه آنچه در این فصل ارائه شده را در اولین باری که مطالعه می جذب کنید به مرور زمان پیشرفت خواهید کرد. اصولی که در ادامه خواهند آمد، راه را برای شناخت تخیل باز خواهند کرد. همچنان که این فلسفه را برای اولین بار می‌خوانید، آنچرا آنچه را درک می جذب جزب کنید. دفعات بعد که آن را دوباره می‌خوانید، متوجه خواهید شد که مطالب برایتان راحت‌تر راحت شدند و شناخت گسترده‌تری از کل پیدا کرده اید. آنچه از همه مهمتر است این است که تا زمانی که این کتاب را لاقل سه بار نخوانده اید، در مطالعه این اصول متوقف نشوید و مکس نکنید. نحوه استفاده عملی از تخیل ایده ها نقطه های شروع همه ثروتهای های هنگفت هستند. ایدهها محصولات تخیل هستند. بیایید چند ایده مشهور را بررسی کنیم که منجر به ثروتهای های هنگفتی شدند. به این امید که این توضیحات اطلاعات معینی را راجع به روشی نشان دهند که به وسیله آن تخیل، در کسب سروت استفاده این شد. کتری افزون شده پنجاه سال پیش یک پزشک پیر دهکده به شهر رفت. افسار اسب خود را به جای بست، بی صدا از در پشتی وارد داروخانه شد و با فروشنده جوان دارو شروع کرد به چانه زدن. ماموریت او این بود که سلامت مردم خود را افزایش دهد، و دامن دارترین منفعتی که از زمان جنگ داخلی تا به آن روز به ایالات جنوب رسیده بود را داشته باشد. دکتر پیر دهکده و فروشنده به مدت بیش از یک ساعت در پشت پیشخان با صدای آرام با هم صحبت کردند. پس دکتر آنجا را ترک کرد و به داخل درش گرفت. یک کتری بزرگ و قدیمی، یک ملاقه بزرگ چوبی برای به هم زدن محتویات کتری برداشت و آنها را در قسمت عقب داروخانه گذاشت. فروشنده دارو کتری را وارسی کرد. دست در جیب خود کرد یک مشت اسکناس بیرون آورد و آن را به دکتر داد. این پول 500 دلار و همه پس اندازه فروشنده بود. دکتر تکه کاغذ کوچکی به او داد که فرمول مخفی و روی آن نوشته شده بود. کلماتی که روی آن تکه کاغذ نوشته شده بودند یک دنیا ارزش داشتند ولی برای دکتر بیارزش بودند. آن کلمات مجزه برای جوشاندن کتری لازم بودند اما نه دکتر، و نه فروشندگی جوان هیچ کدام نمی چه ثروت هنگفتی قرار است از این کتری حاصل شود دکتر پیر از اینکه آن وسیله را به قیمت 500 دلار فروخت خوشحال بود این پول بدهی هایش را صاف می کرد و فکر او را آزاد می کرد دارو فروش که کل پسنداز زندگی خود را در ازای یک تکه کاغذ و یک کتری قدیمی به خطر انداخت ریسک بزرگی کرد او هرگز فکر نمی کرد سرمایهش کتری پر از طلا برای او به خواهد آورد که از عملکرد جادویی چراغ علایالدین جلو خواهد زد در واقع آنچه دارو دار و فروش خرید یک ایده بود کتری قدیمی و ملاقه چوبی و رازی که روی تکه کاغذ نوشته شده بود از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار داشتند بعد از اینکه صاحب جدید با استفاده از های راز ترکیبی را تهیه کرد که دکتر چیزی از آن نمیدانست، عملکرد عجیب و غریب کتری شروع شد این داستان را به دقت بخوانید. تخیلتان را امتحان کنید. ببینید میتوانید کشف کنید که مرد جوان چه چیزی را به آن راز اضافه کرد که باعث شد کتری پر از تلاش شود. همچنان که به مطالعه ادامه میدهید به یاد داشته باشید که این داستان داستانی از کتاب 1001 شب نیست. این حکایت، حکایت واقعیت‌هایی است عجیب‌تر از داستان. واقعیت‌هایی که ابتدا به شکل یک ایده شروع شدند. بیایید نگاهی بیاندازیم به طلای هنگفتی که از این ایده حاصل شد. این روش برای کسانی که محتوای این کتری را به میلیون ها نفر پخش می کنند، هنگفتی به ارمغان آورده و هنوز به ارمغان می آورد. این کتری قدیمی هر ساله میلیون ها لیوان بطری شیشه‌ای مصرف می کند و شغلهایی برای تعداد انبوهی از کارکنان این کارخانه شیشه‌سازی فراهم می کند. کتری قدیمی برای انبوهی از کارمندان توزی نویس آگهی نویزها و کارشناسان تبلیغات در سر و سر کشور شغل ایجاد کرده است برای دهها هنرمند که تصاویر عالی از این محصول تهیه کردهاند شهرت و ثروت آورده است. کتری قدیمی یک شهر کوچک جنوبی را به پایتخت کاری جنوب تبدیل کرده است که حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به هر کسب و کار و مخصوصاً به هر یک از ساکنان این شهر سود میرساند تاثیر این ایده در حال حاضر به کشورهای متمدن دنیا نیز رسیده و جریان مستمری از طلا را به راه انداخته که همه می توانند به آن دست پیدا کنند. طلایی که از این کتری به دست میآید یکی از مهمترین کالج جنوبی جایی که هزاران جوان در آن اصول موفقیت را یاد میگیرند به وجود آورده و حفظ می کند. کتری قدیمی کارهای مجزاس دیگری نیز انجام داده است در طول کل دوره رکود اقتصادی دنیا یعنی وقتی کارخانه ها بانک با ها و مؤسسات تخته شدند صاحب این کتری افزون شده به راه افتاد در سراسر سر دنیا شغل پایدار در اختیار انبوهی از مردان و زنان گذاشت و مقادیر طلای فراوانی به کسانی داد که از مدتها پیش به این ایمان داشتند اگر محصول آن کتری قدیمی به بتواند سخن بگوید ماجراهای هیجان انگیزی را به هر زبان بیان خواهد کرد من به وجود لاقل یکی از چنین ماجراهایی مطمئن هستم چون خودم بخشی از آن بودم و این ماجرا از جایی شروع شد که با جایگاه آن دار و فروش و کتری قدیمیش فاصله زیادی نداشت. در اینجا بود که من همسرم را دیدم و ابتدا او بود که از کتری افسون شده با من سخن گفت. وقتی از او میخواستم که مرا چه خوب چه بد به داشتیم محلول این کتری را مینوشیدیم. حال که شما می محتوای کتری افزون شده یک نوشیدنی معروف جهانی است بهجاست که اعتراف کنم که شهد این نوشیدنی همسری به من عطا کرد و خود آن نوشیدنی محرک فکری بود بدون این که مستی ایجاد کند و به دین ذهنی را که یک نویسنده باید داشته باشد تا کار خود را به بهترین شکل انجام دهد احیا می کند. لحظه ای مکس و به آن فکر کنید. این را نیز به یاد بیاورید که سیزده گام تا رسیدن به ثروت که در این کتاب توصیف شدهند وسیله است که نفوذ کوکاکولا از طریق آن به هر شهر و روستایی در سراسر سر جهان رسیده است و هر ایده ای که شما ارائه کنید و مثل کوکاکولا درست و ارزشمند باشد این امکان وجود دارد که رکورد شگفتانگیز این برطرف کن جهان گستر را بشکند. امروزه فکرهاش شی هستند و دامنه عملکردشان خودشان هستند. اگر یک میلیون دلار داشتم چه کار می داستانی که در ادامه بیان می حقیقت این ضررب مثل قدیمی را که میگوید خواستن توانستن است ثابت می کند. این داستان مربی و روحانی محبوب فرانک دابلیو گونساولوس است که حرفه معزهگری خود را از جنوب شیکاگو شروع کرد وقتی دکتر گونسالوس در کالج درس می‌خوند، معایب زیادی را در سیستم آموزشی امان می‌دید. معایبی که او باور داشت اگر رئیس کالج بود میتوانست آنها را اصلاح کند. امیقترین میل او این بود که رئیس یک نهاد آموزشی شود که مردان و زنان جوان در آن با انجام دادن یک کار، آن کار را یاد بگیرند. او تصمیم گرفت کالج جدیدی تأسیس کند که در آن بتواند ایده‌های خود را عملی کند. بدون اینکه که روش های مرسوم آموزشی بال او را ببندند او یک میلیون دلار نیاز داشت تا این ته را به انجام برساند او از کجا می توانست این همه پول را جور کند؟ این سوالی بود که بخش اعظم فکر این مبلغ جوان و بلند پرواز را به خود مشغول نموده بود اما به نظر میرسید او نمیتوانست پیشرفتی کند او هر شب با این فکر به خواب میرفت؟ نیز با آن از خواب بیدار میشد. او آنقدر این فکر را در ذهن خود مرور کرد که به مشغلی فکریش تبدیل شد یک میلیون دلار پول خیلی زیادی است. او این حقیقت را نیز درک کرد که تنها محدودیت محدودیتی است که فرد در ذهن خود ایجاد می کند دکتر گونزاولوس که هم فیلسوف و هم مبلغ بود مثل همه کسانی که در زندگی موفق می شوند فهمید که داشتن هدف مشخص نقطه شروعی است که فرد باید از آنجا شروع کند. او این را نیز فهمید که داشتن هدف مشخص وقتی یک میل شدید از آن حمایت کند تا هدف را به معادل مادیش تبدیل کند جنب و جوش زندگی و قدرت پیدا می کند. او همه این حقایق بزرگ را می دانست اما این را نمیدانست که از کجا و چطور به یک میلیون دلار دست پیدا کند او می توانست مثل خیلی ها عقب بکشد و بگوید ایده هم ایده خوبی است ولی نمیتوانم با آنکاری بکنم چون هرگز نمیتوانم یک میلیون دلاری را که لازم دارم تهیه کنم. این دقیقا همان چیزی است که اکثر افراد میگویند ولی دکتر گونزولوس چنین نگفت، چیزی که گفت و کاری که او کرد چنان مهم است که بگذارید آن را از زبان خودش بشنویم یک روز شنبه بعد از ظهر در اتاقم نشسته بودم و داشتم به راههایی فکر می کردم تا با آنها بتوانم برنامه هایم را عملی کنم تقریبا به مدت دو سال بود که در این فکر بودم اما هیچ کاری نکرده بودم جز فکر کردن زمان عمل کردن فرا رسیده بود در آن لحظه تصمیم گرفتم که این یک میلیون دلار را که لازم داشتم در عرض یک هفته به دست آورم مهمترین چیز تصمیم به کسب پول در یک زمان مشخص بود و این را هم به شما بگویم که ای که تصمیم قطعی گرفتم که در زمان مشخص به این پول برسم احساس عجیبی از اطمینان و یقین به من دست داد احساسی که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده بودم به نظر میرسید چیزی در من می گفت. چرا این تصمیم را خیلی قبلتر نگرفتی؟ خیلی وقت است که این پول منتظر توست؟ کارها شتاب گرفت صبح روز بعد به روزنامه ها زنگ زدم و اعلام کردم میخوام سخنرانی تحت عنوان اگر یک میلیون داشتم چه کار میکردم انجام دهم فورا رفتم روی سخنرانیم کار کنم ولی صادقانه به شما میگویم که کار سختی نبود چون سخنرانی را تقریبا دو سال پیش آماده کرده بودم تکهگاه روحی آن بخشی از خودم شده بود. هنوز تا نیمه شب زمان زیادی مانده بود که نوشتن متن سخنرانی را تمام کردم به بستر رفتم و با اعتماد به نفس و اطمینان خوابیدم چون خودم را صاحب یک میلیون دلار میدیدم. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم دوش گرفتم سخنرانی را خواندم سپس زانو زدم و دعا کردم که سخنرانی هم مورد توجه کسی قرار گیرد که پول لازمه را برایم تهیه کند وقتی داشتم دعا میکردم دوباره این احساس اطمینان را پیدا کردم که پول در راه است. من بسیار هیجان زده شده و بدون اینکه سخنرانیم را همراه هم داشته باشم راهی شدم. رفتم پشت تریبان و آماده سخنرانی شدم. دیگر خیلی دیر شده بود، نمی توانستم بروم و یادداشت هایم را بردارم. در عوض ذهن نیمه خداگاه هم مطلبی را که نیاز داشتم ارائه داد. وقتی برای سخنرانی بلند شدم، چشمهایم را بستم و با تمام وجود از رویاهایم سخن گفتم. نه تنها با حضار بلکه با خدا سخن میگفتم. و آنها گفتم اگر یک میلیون دلار داشتم با آن چه میکردم؟ را که برای سازماندهی یک نهاد علمی بزرگ در ذهن داشتم تا جوانان در آن یاد بگیرند که کارهای عملی را انجام دهند و در این حال ذهنشان را پرورش دهند توصیف کردم. وقتی سخنرانیم را تمام کردم و نشستم، مردی به آرامی از جای خود که در ردیف سوم پشت سر من بود برخاست و به سمت تریبون به راه افتاد. از خود پرسیدم او چه میخواهد بگوید. او پشت تریبون ایستاد، دستهای خود را باز کرد و گفت: ای پدر روحانی، من از سخنرانیت خوشم آمد و لذت بردم. فکر می کنم اگر یک میلیون دلار داشته باشی، را که میگویی، عملی خواهی کرد، برای اینکه ثابت کنم به تو و به سخنت ایمان دارم، فردا صبح به دفترم بیا. تا یک میلیون دلار به تو بدهم. اسم من فیلیپ دی آرمور است. گنزالوس جوان به دفتر آقای آرمور رفت و یک میلیون دلار دریافت کرد. او با این پول بنیاد فناوری آرمور را تأسیس کرد. این پولیست که اکثر مبلغان در تمام طول عمر خود آن را نمی بینند ولی کشش فکری که در پشت این پول بود در عرض کمتر از یک دقیقه در ذهن مبلغ جوان شکل گرفت. بعد از اینکه او در ذهن خودش به تصمیم مشخصی رسید و برنامه مشخصی را برای رسیدن به آن تدوین کرد، در عرض 36 ساعت به آن رسید. یک میلیون دلار لازمه حاصل یک ایده بود. پشت سر این ایده میلی بود که گونزالس جوان به مدت بیش از دو سال در ذهن خود پرورانده بود. این واقعیت مهم را در نظر بگیرید. اینکه که جوان فکر مبهمی در مورد یک میلیون دلار و نیز امید اندکی به آن داشت چیز تازه یا منحصر به فردی نبود. خیلی های دیگر قبل از او چنین افکار مشابهی داشتند. اما وقتی او ابهام را کنار زد و قاطعانه گفت من در عرض یک هفته به آن پول خواهم رسید تصمیمی که آن روز شنبهی به یادماندنی گرفت خیلی منحصر به فرد و متفاوت بود. به نظر میرسد خداوند از کسی طرفتاری میکند که دقیقا میداند چه میخواهد و عزم خود را نیز جزم کرده تا به آن برسد. علاوه بر این، اصلی که دکتر گونزالوس از طریق آن به یک میلیون دلار رسید، هنوز هم زنده است. در دسترس شماست. این قانون جهان شمول به همان اندازه که این مبلغ جوان از آن به صورت موفقیت آمیز استفاده کرد، امروزه کارایی دارد. این کتاب، سیزده انسان این موفقیت بزرگ را گام به گام توصیف می کند و بیان می‌کنند که چطور باید مورد استفاده قرار گیرند. توجه داشته باشید که دکتر آسا کاندلر و دکتر فرانک گونزالوس یک ویژگی مشترک داشتند. هر دو این حقیقت شگفتانگیز را میدانستند که از طریق قدرت هدف مشخص و برنامههای معین میتوان ایدهها را به پول نقد تبدیل کرد. اگر شما یکی از کسانی هستید که باور دارند کار سخت و صداقت به تنهایی باعث ثروت شوند، چنین چیزی امکان ندارد. این سخن درستی نیست. ثروت هنگفت هیچگاه نتیجه کار سخت نیست. ثروت اگر حاصل شود، در پاسخ به تقاضوی مشخص بر اساس کاربرد اصول مشخص حاصل می شود، نه با شانس و بخت و اقبال. در کل یک ایده، یک کشش فکری است که با تمسک جستن به تخیل باعث عمل می شود. همه فروشندگان ماهر می دانند، هر جا کالا نتواند فروخته شود، ایده می تواند فروخته شود. فروشندگان معمولی این را نمی دانند. به همین خاطر است که آنها معمولی هستند. یک ناشر کشفی کرد که باید برای عموم ناشران ارزش زیادی داشته باشد، محتوای کتاب به هیچ وجه تغییر پیدا نکرد. او جلد کتابی را که فروش نمی‌رفت کند و جلد جدیدی به آن زد که ارزشی موسوم به ارزش گیشه ای داشته باشد. او فهمید که بسیاری از مردم فقط عناوین کتاب‌ها را می‌خرند نه محتوای آنها را. او صرفاً با تغییر نام کتابی که فروش نداشت فروش آن را به بیش از یک میلیون جلد رساند. این ایده هرچقدر چقدر هم ساده به نظر برسد ولی یک ایده بوده است. تخیل بوده است. ایده‌ها قیمت استانداردی ندارند. خالق ایده ها خودش قیمت آنها را تعیین میکند و اگر تیزهوش باشد آن را کسب میکند. صنعت تلویزیون انبوهی از میلیونرها را خلق کرد. بسیاری از این افراد کسانی بودند که نمیتوانستند ایده تولید کنند ولی این تخیل را داشتند که وقتی ایده ها را میبینند شناسایی کنند. گروه بعدی میلیونرها از صنعت رادیو سر برآوردند صنعتی که جدید است و انسانهایی با تخیل قوی آن را اشبا نکردند کسانی پول درخواهند خواهند آورد که برنامه‌های رادیویی جدید و ارزشمندتری کشف یا خلق کنند و این تخیل را داشته باشند که ارزش را شناسایی کنند و به شنوندگان رادیو این فرصت را بدهند که از آن سود کسب کنند سرانخان و هنرمندان پرحرف حرف کم مایه که امروز فضا را با متلک ها و نیش و کنایه ها و خنده های کرکر و هرهر احمقانه خود آلوده می کنند مثل الوارهای سبکی سبوکی هستند که به زمین می‌خورند و هنرمندان واقعی جای آنها را خواهند گرفت که برنامه های دقیقی را تبیین می کنند که برای خدمت به ذهن انسان و ارائه تفریحات تراحی شدند در اینجا دامنه گسترده‌ای از پرست ها وجود دارند که از تلف شدن اوقات به خاطر فقدان تخیل اعتراض می‌کنند و التماس می‌کنند که به هر قیمتی شده نجات یابند علاوه بر این چیزی که رادیو نیاز دارد ایده‌های جدید است اگر این عرصه جدید فرصت ها توجه شما را به خود جلب کند شاید از این ایده سود ببرید که برنامه‌های موفق رادیو در آینده بیشتر به این توجه خواهد کرد که شنوندگانی خلق شوند که خریدار باشند نه شنونده به عبارت ساده‌تر سازنده موفق برنامه‌های رادیویی که در آینده موفق می‌شود باید راه‌های عملی برای تبدیل شنونده به خریدار پیدا کند علاوه بر این، تولید کننده موفق برنامه رادیویی در آینده کسی کسیست که خصوصیاتی داشته باشد که بتواند تأثیر آن را بر روی مخاطب قطعا نشان دهد. حامیان در حال خسته شدن از قبول چرب زبانی های مبتنی بر باده هوا هستند. آنها مداره که مسلم و غیرقابل قابل انکاری می خواهند دال بر اینکه که برنامه به هوست باعث شود میلیون نفر احمقانه ترین خنده ها را سر داده و کالا خریداری کنند. حامیان در آینده چنین مطالبه ای خواهند داشت. نکته دیگر اینکه که آنهایی که با ورود به این حوضه جدید فرصت فکر می کنند می آن را درک کنند اینجاست که تبلیغات رادیویی قرار است توسط یک گروه کاملاً جدید متشکل از کارشناسان تبلیغات که از کارکنان تبلیغات روزنامه‌ها و مجلات قدیمی متمایز هستند، مدیریت و کنترل شود. افراد پرسابقه عرصه تبلیغات نمی‌توانند های مدرن رادیویی را بخوانند چون آنها یاد گرفته‌اند که ایدهها را ببینند. تکنیک جدید رادیویی افرادی را میطلبت که بتوانند ایده ها را بر اساس صدا از یک دست نوشته تفسیر کنند. نویسنده باید برای اینکه این را یاد بگیرد، یک سال کار سخت انجام دهد و هزاران دلار پول صرف آن کند. امروزه رادیو به جای رسیده است که زمانی تلویزیون بود و مری پیکفورد و موهای فرفریش برای اولین بار بر روی صفحه نمایش ظاهر شد. برای کسانی که میتوانند ایده ها را تولید یا شناسایی کنند، جای زیادی در رادیو وجود دارد. اگر سخن بالا که در مورد فرصت های رادیو گفته شد، کارگاه ایده شما را به کار وادار نکرده است، بهتر است آن را فراموش کنید. فرصت شما در یک حوزه دیگر است. اگر این سخن توجه شما را حتی به مقدار بسیار اندک جلب کند، میتوانید وارد آن شوید و ایده ای را که برای تکمیل کارتان لازم دارید، پیدا کنید. اگر ای در رادیو ندارید، هرگز نگذارید که شما را نامید و دل سرد کند. اندرو کارنگی اطلاعات بسیار اندکی در مورد تولید فولاد داشت. او از دو اصل که در این کتاب توصیف شده استفاده عملی کرد و صنعت فولاد را وادار کرد که ثروت هنگفتی به او بدهد. عملا داستان هر ثروت هنگفتی از روزی شروع می شود که خالق ایدهها و فروشنده ایدهها دور هم جمع می شوند و با هم همکاری می کنند. کارنگی خود را در محاصره ی کسانی قرار داد که همه ی کارهایی را که او نمی توانست انجام دهد می انجام دهند. منظور کسانی است که ایده تولید می کنند و کسانی که ایدهها را عملی می سازند و خود و دیگران را فوق ثروتمند می کنند. میلیون نفر به امید شانس های دلخواه به زندگی می پردازن. شاید یک شانس دلخواه منجر به یک فرصت شود اما مطمئنترین برنامه ها هم نباید به شانس و احتمال وابسته باشد آنچه بزرگترین فرصت زندگی مرا به من داد یک شانس دلخواه بود اما 25 سال تلاش مسمم باید به این فرصت اختصاص داده شود تا آن به یک امتیاز یا نعمت تبدیل شود این شانس عبارت بود از شانس خوب من در دیدار با اندرو کارنگی و جلب و کسب مشارکت او. در آن زمان کارنگی ایده سازماندهی اصول موفقیت به شکل فلسفه موفقیت را در ذهن من کاشت. هزاران نفر از کشفیاتی که در طول 25 سال تحقیق صورت گرفته است بهره بردند و با کاربرد این فلسفه ثروتهای هنگفت متعددی به دست آمده است. شروع آن ساده بود. ایدهی بود که هر کسی می توانست آن را بپروراند. شانس دلخواه به واسطه کارنگی حاصل شد. اما اراده، هدف مشخص، میل به رسیدن به هدف و تلاش مستمر 25 بیست و پنج سال چطور؟ یک میل معمولی نمیتواند در مقابل ناامیدی، دل سردی، شکست موقت، انتقاد، عیب و اینکه دائما به خود یادآوری کند که دارد وقت تلف میکند، مقاومت کند و از اینها جان سالم به در ببرد. یک میل شدید یا یک دل مشغولی است که میتواند چنین کند. وقتی این ایده برای نوحستین بار توسط آقای کارنگی در ذهن من کاشته شد، این ایده ترغیب، پرورانده و تشویق شد که زنده بماند. به تدریج این ایده قولی شد که قدرت پیدا کرد و مرا ترقیب نمود، پروراند و سوق داد. ایده ها اینطوری هستند. ابتدا شما به ایده ها زندگی و عمل و راهنمایی می‌دهید، سپس آنها خودشان قدرت پیدا می کنند و همه مخالفان را کنار می‌زنند. ایده ها نیروهای ناملموس و غیرعینی هستند ولی قدرتی بیش از مغز عملی که از آن شدهاند دارند. آنها این قدرت را دارند تا بعد از اینکه مغزی که آنها را تولید کرده و به خاک تبدیل شده را باز هم زنده نگه دارند. موفقیت مستلزم هیچ توضیحی نیست. شکست هیچ بهانه ای را جایز نمیدانند.